با درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجیان گرامی تلویزیون رنگین کمان بخش بیست و پنجم گفتار درباره باری رو شروع میکنم اینک وارد یک مرحله از گفتار کستوی شدیم که مبارزاتش عمق بیشتر گرفته رضا از مملکت رفته یه مقدارشو در بخش قبل اشاره کردم و کشور به هم ریخته باز هم خواهم چه چگونه به هم ریخته و از هر سو صداها بلند می شود و از هر سو فریاد می و در کنارش فساد هم خود به خود فراوانه پادشاه جلوی فساد رو گرفته بود فساد هم فراوانه بوای بیگانه مملکت رو اشغال کرده و به خاطر اینکه پس از لزوا شاه دموکراسی برقرار شده درس کردم یک جای دیگه خاطرم باشه بلبشو هست بیشتر دموکراسی نیست و مدیریت جامعه از دست زماندارن خارج شده است و این کستویی که فریادش در هر زوایه این کشور بلند شده و را قبل از رو کردن این مطلب به این موضوع اشاره میکنم که هدف بنده بعضی از دوستان با من تماس میگیرد میگن شما میخوایید کستویی رو به مقام بلندی بدید البته کشوی مقام بالایی داره کستویی از زمانه جنگ های ایران روس که دوره اصلاحاته تا اون روزی که گشه شد منحصر به در مبارزاتش کسی مثل اون نبوده از این بابت قابل قبوله ولی کسترابی هم اشتباهات فراوانی کرده ما به طور کلی در تاریخ مقدسی وجود نداره در تاریخ رهبر بیگناهی وجود نداره در تاریخ اشتباهه باید اشتباهات رو سنجید تک تک از از همون شروع عباس میزا تا همین امروز که با هم داریم صحبت میکنیم اگه بررسی کنیم دو چار اشتباهات فراوانی شدند بنابراین تاریخ یکی از شاخه هایش به بررسی کردن اشتباهات بزرگانه ولی نتیجه گیری به مورخ لازم نیست نتیجهگیری گیری رو خاننده خودش نتیجه میکره برحال رزا شاه رو بردند کستوی در جوانب مملکت مبارزاتش رو شروع کرده رو میبینه که مردم آشفتند نظرش در مورد مردم منظور از مردم کسانی هستند که دوچهرند در زمان رضاشاه تملق میگفتند اینک که رضاشاه رو برداشتند بردند بر علیه او انگ میزنند توهین میکنند و سوی اولین قدم معتبرش همین است مینویسد این مطلب رو در پیمان سال هفت ببخشید شماره چهار صفحه 255 که شهریوره 1320 این مطلب رو نوشته رفرانس هم فدمتون دادم می نوشه که یک بیچارگی در ایرانیان این است که هیچ کس نمی خواهد به گناه خود پی برد و آن را به گردن گیرد همیشه می خواهند یکی را پیدا کنند و گناه ها را به گردن او انداخته خود را آسوده گردانند این یک ضعف نفس و یک بیچارگی بسیار زیانمندی است که برای شهر آن یک کتاب جداغانهی میخواهد آن شاه آن شاه گذشته که از میان رفته همه گناه ها به گردن او میافتاد شما بگردید در میان 20 میلیون نفوس یک تن بدکاره نیست همه بدیها را او یکتن میکرده که از میان رفته مینشینند و میگویند و دلهای خود را خنک میگردانند و پیه حوشبازی های خودشون میروند ولی آیا حقیقت نیست دیگر خواهد شد؟ آیا تاریخ نیست از میان خواهد رفت؟ شما پیش از آن شاه شما پیش از آن شاه صد ناشایستگی از خودشان دادید در چند سطح پایی شد صفحه پایین هم باز ادامه میده میگه میگنم مرا هوادار شاه گذشته خواهند نامید ولی این امر بسیار میپاست من در روزی که آن شاه با توانای بسیار سرشددار می بود خود را کنار کشیدم جریان واقعی اوین رو عرض کردم حضورتو و دستور کستوی رو بر علیه رزاشا رو هم نوشتیم گفتیم و بیرون رفتن کستوی از عدلیه را هم گفتیم در آن تاریخ اشاری که به اون تاریخ است میگوید که من در روزی که آن شاه با توانای بسیار سرشدار نبود خود را کنار کشیدم و به ستایشگری نپرداختم پس چگونه تواند بود که اکنون هواداری از او نمایم چه سودی مرا از چنین کاری خواهد بود بگذارید این اولین نظریه کسزوی در مورد مردم میشه بعد از وزاشا در اون مملکت وجود دارند گروهی از این مردم بنده کلیه مردم رو مغصر نمیدانم مردم عادی مغصر نیستن او پیش و پیشگوان اغلب کسانی که تیده دارن نفرت دارن با همه نفرت دارن اغلب آنهان که این مشکلات رو میافرینند به هر حال از خمی سال 1320 وارد مبارزات کثریدی در جامعه می شویم سقوط رژیم دیکتاتوری در شهریور 1320 به یک یکباره فضای دموکراتیک و آزاد را در جامعه فراهم ساخت ارتش شکست خورد و قوای اشغالگر بیگانه جانشین آن شد نظم انزبعات اجتماعی نیست از هم پاشید گفتار آزاد گردید قلم‌ها از قلمدان بیرون آمدند و توفنگ ها نیست از ایز زمین ها و پستوها ناامنی در گوشه و کنار کشور پدیدار گردید نشریات بی شما رو نشریات بی احزاب فرابان و مبارزات انتخابات مجلس دولت های ناپایدار زمینه جامعه را برای تلاش های سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت در این میان کس این اصلاحگر متحد تمام عرصه ایران را میدان نبرد اجتماعی خویش ساخت او در مدت پنج سال از باقی مانده عمرش بیشتر از پنجاه سال عمر گذشتهش، به فعالیت علمی و انتقادی و اجتماعی و مبارزاتی بروقت در همه جوانه جامعه سخن گفت ارز کردم رو تکرار میکنم و قلم زد رجال و مجلس و دولت و احزاب و غرب و شرق و ارتش و زنان و روزنامنگاران و غربگرایان و اودباب و روشنفکران و همه این اشخاص در چهار انتقاد قلم بی‌قرار داشت البته مرکز اصلی نبرد او همیشه فساد و تزلیر روحانیت بود خرافات مذاهب و فقه ها و به ویژه مذهب شیعه بود اولین مطالبی که وی پس از سقوط رضا شاه بیان کرده است تحت عنوان امروز چه باید کرد است رضا شاه رفته کسروی این انسان مبارز از خودش سوال میکنه که امروز چه باید کرد در یکی از سخنرانی ها به این مطلب جواب میده در شهریور 1320 همزمان با اشغال کشور به وصله قواه بیگانه و تبعید شاه از ایران کسروی سخنانی در جهت خروج از بونبسته های سیاسی و اقتصادی بیان کرده است این سخنان بعدها به صورت جزوه چهل صفحه ای منتشر که که در این روزها مشغول نوشتن کتاب تاریخ مشروطه ایران بود والیزو از محسنات مشروطیت کاملا آگاهی داشت قانون اساسی مشروطیت را تنها راه علاج خروج از بنبست و اصلاحات اجتماعی و حل مشکلات جامعه دانسته و آن را به عنوان تنها حکومت مناسب برای اداره کشور پیشنهاد کرده است خود در این باره مینویسد امروز کشور ما به آن نیازمند است که مشروطه و قانون اساسی اجرا گردد حکومت ملی به روی بنیاد استواری گذارده شود طبقات توده برای چنان حکومتی آماده گردند مجلس از روی قانون انتخاب شود وزیران مسئول وزیران مسئول مجلس باشند همه مطالب در فارمان به گفتگو درآید نولت یک سیاست آشکاری دنبال کند با همسایگان از هر بار حسن تفاهم در میان باشد و در این سخنرانی یکی از اعلن شکست, شکست مشروطیت و پیدایش دیکتاتوری را آمارده نبودن توده مردم میشمارد و نقش آگاهی توده را در استقرار مشروطیت و قانون شرط اساسی می میداند و باز هم در این باره میگوید در همان سخنرانی شروع کردم فرق مشروطه با استعداد تنها در بودن و نبودن قانون و یا در شکل حکومت نیست یک فرق بزرگ در شایستگی و ناشایستگی تو دست. بی است که به علت استقرار دیکتاتوری رضاشاهی از انقلاب مشروطه نتایجی که انتظار می‌رفت به دست نیامده است ولزا کلیه کارهای دوره دیکتاتوری را غیر قانونی می‌داند درست میگه کارها که با دستور و با مجازات همراه باشه با ترس همراه باشه اینکه آزادی نیست اینکه دموکراسی نیست او پیشنهاد کند که تمام برنامه‌های انجام شده در دوره رضاشاه بایستی از صورت قانونی خارج شوند و یک صورت قانونی جدیدی به آن بدند میگوید باید گفت آنچه در آن بیست سال در ایران رو داده نه مشروطه یا قانون بلکه استبداد و دیکتاتوری بوده و باید کارهای آن زمان همه را از قانون بیرون جمعون و اثر قانونی با آنها داد آنگاه سمنه پیش کشیدن یک مبحثی از دموکراسی، این پرسش رو مطرح میکنه جالبه میگوید که آیا حکومت برای مردم است یا مردم برای حکومت و خود پاسخ میدهد که در رژیم های استبدادی مردم برای حکومت هستند بدیم معناه که خب مردم در اختیار حکومت هستند رژیم استبدادی مردم رو به عنوان یک شهی در نظر میگیره و حقی به او قائل نیست و بعد میگوید که در رژیم های گفتیم که میگه مردم برای حکومت هستند و در رژیم مشروطیت حکومت در اختیار مردم حاکم جامعه مردمه این مردمه که تصمیم میگیره نه رجال نه اون گالادشین ها حکومت در اختیار مردم و مال مردم میباشد و مردم در چون این حکومتی بار سنگینی بر دوش می‌کشد و نتیجه می‌گیرد که کسانی نتیجه می گیرد که این امر در صورتی امکان بذری است که توده مردم آگاه و وطن پرست باشند و چند را هم از پیمان بین مردم یک کشور میدانند که در سود و زیان و در خوشی و سختی با هم شریک باشند و همگی دست به هم داده بایگانگیزی هند به این اگر راهزنی در فلان گوشه کشور پیدا شدند راهزنانی در فلان گوشه کشور پیدا شدند دیگران نگویند به ماچه و همه گی دست به هم داده به جلوگیری از آن بکشند کس کسانی ها که همه مشکلات را به گردن دوری دیکتاتوری می اندازد و انتخابات فرمایشی مجالس شورای ملی آن زمان را به باد انتقاد میگیرد مورد سؤال قرار میدهد میگوید ما میگوییم راست است ولی ما نیک یاد داریم که پیش از این رفتار در انتخابات دوره چهارم و پنجم مردم که آزادی داشتند به رفتارهای بسیار بدی برخاستند به تلبیهن عقاید جدید سیاسی غرب و احتمالا بگم گمانم عقیده کومونیسی است عقاید سیاسی غرب را که می‌گویند، حکومت مشروطه بازمان امروز مقایر است بیپایه می جالب من یادم میاد در اون تاریخ این گروه های عجیب غریب مدعی بودن که نه مشروطیت به خصوص انقلاب ایران انقلاب کارگری نبود انقلاب ورزوازی بود و این انقلاب ببخشید و این انقلاب درست نیست کجاش درست نیست درست نیست که کشک کشتار زیاد نشده آدم کشی زیاد نشده درست نیست که دیکتاتوری دارن در رو قرار نگرسته. ما دیدیم انقلاب برشویکی رو و خیلی انقلاب های دیگر رو ایراد میگرفتن گرفت، می من خوبی آدمه کسر به اون اشاره میکنه مشروطه را با زمان امروز مقایر میدانند کسر میگه و می نویسد که میگویید اکثر ملل از آن حکومت مشروطه ایراز شدند این دلیل بی جا هست ما را با دیگران چه کار ما باید خود فهم و خرد به کار انداخته یک راهی برای زندگانی پیش گیریم راهی که ما را به رستگاری و فیروزی تواند رسانید این بسیار است که مردمی چشم به سوی دیگران دوزند و کورکورانه پیروی از ایشان کنند شما اگر نیکندیشید بهترین اصول به سرشداری یا حکومت همان مشورت می باشد و استبداد چه از سوی یکتن و چه از سوی یک دسته استبداد از فرقی نمی کند همونطور که در گذشته مرس کردم یکی از خصوصیات عقیدتی کسدری وحدتگرائی ما در گذشته این مطلب رو بارها گفتیم سه ستا خصوصیات داره خردگرایی اخلاق, اخلاق،, اخلاق گرایی و وحدت گرایی و این اینجا اشاره به اون قسمت سومه وحدت گرایی به همین دلیل با تشکیل احزاب متعدد و اختلافات عقیدتی مخالف از جوان را مایه ضعف کشور میشمارد و این یکی از اوصاف ناآگاهی کسریه اگر دنبال دموکراسی هست باید احزاب هم دارن باشند باید تزاد گفتار باشه تزاد ده میده باشه تزاد رفتار باشه باید همه اینا باشن باید گفتگو باشه ولی کسری به این متقد نیست میگه باید همه یک دین و یک بچم این شعار کسری بود و ارحال در این مورد میگه که نیروی یک توده از روی هم آمدن نیروهای افراد پدیداید 20 میلیون مردم که در یک جا زیند چون همگی آزادی و آبادی کشور خود را خواهند و به کوشش و جان در راه آن آماده باشند این خواهش و از در یک نیروی است و چون همه اندیشه یکی یک گردانند و دست به هم دهند از اینجا یک نیروی 20 میلیون نفری پدیدار می آید. البته اشتباه می کند که این خود استبداد و دکتاتوریست کسفری معتقد است که باید در جهان یک دین واحد رو فرما کند بازم این هم یکی از افکار بگمان من غلط کسفریه لیکن قصد او از دین چون این است که معنی درست دین شناختن معنی جهان و زندگانی و پی بردن به گوهر آدمیگری و زیستن با یک آین بخردانه است چون این نیست که ولتر و دیگران در آرزویش بودند البته میتوان بهشون ایراد گرفت که معنی چرا لازم نیست که نوعی زیستن ما را دین معیین بکنه ما علوم متعدد داریم ما روانشناسی داریم جامعه شناسی داریم انسان شناسی داریم فلسفه داریم تمام این علومی که موجوده روش هم زحمت کشیده میتونن خط مسیر مردم را با اختیار خود مردم با انتخاب خود مردم معیین کنن ولی به هر حال تسلی. در اینجا به گمان من مسئله رو تونت تر کرده و اشتباه کرده در تعویلاتی که در این گفتار از عقاید کستوی مشاهده می شود تغییر عقیده نصفی او در باری زن می باشد من گفتم بارها گفتم در گذشته گفتم کستوی از همون شروعش یک عقیده ارتجاعی نسبت به بان عنوان مدکت داشت، به شدت حامی حجاب بود به شدت زن را در لغ جامعه میپنداشت و معتقد بود که کسی باید چهره خانم ها رو نبیند. با چون این فکری ما می بینیم که در سال 1320 کسب روی رو شده این مرد. می نویسد که در باره خاندانها یک کار دیگر هست و آن اینکه معنی مشروطه و سرشدداری تودهی و نتیجه استقلال مانند اینها را به زنها نیز یاد دهیم و انسان را در این اندیشه همراه و آنان را در این اندیشه همراه و در علاقه به کشور و توده همباز خود گردانیم برای ایشان نیز نشستها برپا کنیم البته هنوز افکارش کامل نشده در مورد زنها ما لازم نیست مگه ما چه این که به زنها یک چنین موقعیتی بدیم زن خودش و آگاهی و با اختیار کامل موقعیتش رو در جامعه میتونه کسب کنه و جا کنه به هر تقدیر ولی هنوز از همونطور که گفتم هنوز از آزادی زن و برابره او با مرد سخنی دنیا نمی آورد و ما در آینده خواهیم دید که چگونه افکارش در این باره نیست متحول می شود یک کتاب دیگری داریم ما یک جلزبه دیگری داریم که در این تاریخ منتشر شده من اون رزبه اولی رو که حضورتون عرض کردم کتابهاش رو آوردم جا تا خدمت رو نشان بدهم امروز چه باید کرد امروز چه باید کرد سرنوشت ایران چه خواهد بود و امروز چاره چیست بله این کتاب دیگریست که بازد اشاره خواهم کرد امروز چه باید, چه باید کردی؟ از کردم که این یک سخنرانی که بعد منتشر شده در باره کستوی نیجورتون اصلا که تاریخ انتشارش رو 1336 من چاپ چهارمش رو دارم اولیبشت 1336 و در جمع چهل سفه و این چهل صفه یکی از گفتارهای کسدریش که منتشر شده و چاپ کردید کتاب دیگری در این باره نوشته به نام خدا با ماست این کتاب هم البته بنده این کتاب رو تهید نکردم عنوان فهم موضوع یک مقاله سونم که کسلوی در زمستان 1321 به قلم کشیده است این مقاله پاسخ به پرسشی است که شخصی از کرده است پرسش در مورد عقیده کسلوی درباره خداوندگار است کسلوی خدا را باور داشت و گفتی بارها خدا را باور داشت و معتقد بود که نبردهای های را به کمک آفریدگار پیش میبرد و در اخلب نوشتههایش نیز تاکید می که خدا با ماست. خب بنده فرصتم تمام شده برای این بخش بقیه گفتار درباره این جزور ها این سخنرانی را تحت عنوان خدا با ماست در بخش آینده ادامه خواهم داد. روز بخیر.